Thank you. بنده چهارون استراب حالت تشویش درباره باری موقعیتی نامطمئن که فرد هم امیدوار است بهترین حالت رخ دهد و هم می ترسد که بدترین حالت اتفاق بیافتند. این وضعیت معمولا مانع از آن می شود که افراد مسترب از فعالیتهای ظاهران لذت بخش فرهنگی، جنسی یا اجتماعی لذت ببرند. حتی در اوضاع بسیار خوب، افراد مسترب همچنان منتظر بدبختی خواهند بود و ممکن است ترجیح دهند در اتاقی تنها باشند. یک، شکل سنتی آرام کردن و تسلی دادن قوت قلب است. کسی به افراد مسترب توضیح می دهد که ترس های آنها مبالغ آمیز است و رویدادها قطعا به نحو مطلوبی پیش خواهند رفت. دو، ولی قوت قلب ممکن است ظالمان ترین پادزهر استراب باشد پیش بینی های خوشبینانه ما هم سبب میشوند که فرد مسترب برای بدترین حالت آماده نباشد و هم نادانسته تلویحا میگویند که اگر بدترین حالت رخ دهد مصیبت بار و فاجعه خواهد بود سنکا به شیوهی حکیمانه تر از ما میخواهد که فکر کنیم رویدادهای بد احتمالا رخ خواهند داد ولی اضافه می کند که هرگز احتمال ندارد به ای که میترسیم بد باشند. سه. در فوریه سال 63 میلادی، دوست سنکا، لوسیلیوس کارمند دولت که در سیسیل کار میکرد، از اقامه دعوای علیه خود آگاه شد که او را در معرض بدنامی همیشگی و اخراج از شغل قرار میداد. او به سنکا نامه نوشت. سنکا در جواب چنین گفت. ممکن است انتظار داشته باشی از تو بخواهم پیامد خوبی برای خود ترسیم کنی و در سایه فریب‌های فریبهای امید بیا ولی من تو را به آرامش فکری از راه دیگری هدایت می کنم که در این نصیحت به اوج خود رسید. اگر می تمام نگرانی ها را کنار بگذاری فکر کن آنچه می ترسی احتمالا رخ دهد اتا رخ می‌دهد. سِنِکا مطمئن بود که وقتی به طور عقدانی دریابیم اگر هایمان برآورده نشوند چه اتفاقی خواهد افتاد تقریبا به طور قطعی در میابیم که این مشکلات پیش پا افتاده تر از هایی هستند که پدید می‌آورند اندو ولی نه هیستری لوسیلیوس موجه بود اگر متهم شناخته شوی آیا چیزی بدتر از تبعید یا زندانی شدن ممکن است برایت رخ دهد شاید فقیر شوم در این صورت یکی از انبوه فقرا خواهم بود شاید تبعید شوم. در این صورت چونان با خود رفتار خواهم کرد که گویی در همان محل تبعید زاده شده بودم شاید مرا در زنجیر کنند در این صورت چه؟ آیا اکنون از بند و زنجیر آزادم؟ زندان و تبعید بد بود ولی محور اصلی استدلال نه به آن بدی که لوسیلیوس ناامید پیش از بررسی استراب از آن می ترسید. چهار نتیجه میگیریم که هرگز نباید با اظهار نظرهایی درباره ناممکن بودن ورشکستگی به افراد ثروتمندی که میترسند ثروت خود را از دست دهند، قوت قلب بدهیم. ثروتمندان باید چند روزی را در اتاقی بادگیر با رژیم غذایی سوپر رقیق و نان بیات بگذرانند. این پند را یکی از فلاسفه محبوب سنکا به او داده بود. معلم بزرگ لذت پرم اپیکور عادت داشت ایامی را تقریبا گرسنه بماند تا دریابد آیا ارزش دارد که برای جبران کسری موازنه مادی خود را به مخاطره زیاد بیاندازد یا نه بنا به وعده سنکا چنین ثروتمندی به زودی به درک مهمی نائل می‌شود آیا این واقعا همان شرایطی است که از آن می ترسیدم؟ هر بار این فقر را به مدت سه یا چهار روزگاهی بیشتر تحمل کن و من به تو اطمینان می دهم که در یافت که آرامش فکری انسان وابسته به فتونا نیست. پ به نظر بسیاری از رومی ها عجیب حتی مسخره بود که چنین فیلسوفی خودش در تجمل غرق بود. سنکا تا اوایل چهل سالگی از طریق شغل سیاسیاش آنقدر پول کافی جمع کرده بود که ویلاها و مزارعی بخرد. او خوب میخورد و به اساسیه ی عشق میفرزید. به ویژه به میزهای ساخته شده از چوب درختان مرکبات که پایه های آجی داشتند. سنکا از کسانی که می‌گفتند در رفتارش چیزی غیر فلسفی وجود دارد آزرده بود. فیلسوفان را از تحصیل ثروت باز ندارید. هیچ کس حکمت را به فقر محکوم نکرده است. و با عملگرایی تأثرانگیزی انگیزی می گفت من هر آنچه را در قلم روی فرطونا قرار دارد خار می شمارم. ولی اگر امکان انتخاب داشته باشم نیمه بهتر را انتخاب می کنم. شش این ریاکاری نبود. رواقیگری فقر را سفارش نمی کند. رواقی‌گری سفارش می‌کند نه از فقر بترسیم و نه آن را خار بشماریم. رواقی‌گری ثروت را اگر فنی و دقیق بگوییم، نوعی پرودوکتم، یعنی امری مرجح میداند. نه چیزی ضروری و نه جرم. ممکن است رواقیون به اندازه ابلهان با نعمتهای فراوان فورتونا زندگی کنند. خانه‌های آنها ممکن است به همان اندازه بزرگ و اساسیه آنها به همان اندازه زیبا باشد. تنها یک نکته است که رواقی را حکیم می کند. چگونگی واکنش آنها به فقر ناگهانی. ایشان بدون عصبانیت یا سرخوردگی از خانه و خدمتکاران خود کنار خواهند گرفت. هفت. این عقیده که حکیم باید بتواند از تمام نعمتهای فرطونه به آرامی کناره گیری کند، افراتی ترین دعوی منحصر به فرد رواقی گریب. با توجه به اینکه فرطونا نه فقط خانه‌ها و پول بلکه دوستان، خانواده و حتی بدن خودمان را به ما عطا می‌کند. حکیم نمی‌تواند چیزی را از دست بدهد. او همه چیز را در درون خود دارد. حکیم خودبسنده است. اگر در بیماری یا جنگ دستی را از دست دهد یا اگر حادثه یک یا هر دو چشمش را از کاسه درآورد، از آنچه برایش باقی مانده رازی خواهد بود این جملات پوچ و بی به نظر میرسند مگر اینکه فهم خود از رضایت مورد نظر سنکارا را اصلاح کنیم. ما نباید خوشحال باشیم که یک چشم خود را از دست داده ایم ولی زندگی حتی بدون یک چشم نیز ممکن است تعداد کامل چشم ها و دستها چیزی مرجه است دو مثال از این حالت حکیم خود را خار نخواد. حتی اگر قامت کوتوله را داشته باشد ولی با وجود این آرزو می کند که بلند قد باشد حکیم از این نظر خود بسنده است که میتواند بدون دوستان زندگی کند نه از این نظر که میخواهد بدون آنها زندگی کند هشت. حکمت سنکا چیزی بیش از حکمت نظری بود در تبعید به کرسیکا ناگهان خود را فاقد همه تجملها یافت این جزیره از سال 238 قبل از میلاد جزو قلمرو روم بود ولی از مزایای تمدن روم سودی نبرده بود. معدود رومی‌های این جزیره به ندرت خارج از دو مستعمره ی ساحل شرقی آلریا و ماریانا سکونت داشتند و غیر ممکن است که به سنکا اجازه داده باشند در این دو مستعمره زندگی کند. زیرا او شکایت می‌کرد که در اطراف خود فقط حرف‌های زمخت غیر رومی می‌شنود. سنکا در امارت ترسناکی نزدیک لوری واقع در نوک شمالی جزیره میزیست که از دوران باستان به نام برج سنکا شهرت دارد شرایط زندگی در این جزیره به طرز دردناکی با روم متفاوت بود ولی این دولتمرده سابقا ثروتمند در نامهای به مادرش گفت که به لطف سالها پیشاندیشی و خوردن سوپ رقیق توانست خود را با محیطش وفق دهد هرگز به فرطونا اعتماد نداشتم حتی وقتی به نظر می پیشنهاد سول می کند همه نعمتهایی را که با مهربانی به من بخشید پول، مقام و منصب حکومتی، نفوز به کناری انداختم تا بتواند بدون اینکه مزاحم من شود آنها را پس بگیرد بین آن نعمتها و خودم شکاف وسیع را حفظ کردم و بنابراین او فقط آنها را گرفته نه اینکه آنها را از من به زور جدا کرده باشد. بند پنجم احساس مورد تمسخر قرار گرفتن از طرف الف چیزهای بی جان. این احساس که مدادی که از روی میز بر زمین میافتد یا کشویی که باز نمی‌شود با هدف مشخصی خاستهای فرد را ناکام میگذارند. ناکامی و سرخوردگی حاصل از شیء بیجان با این حس که این شیء فرد را تحقیر می میکند، تشدید میشود. این شیء به شیوهی معیوس کننده عمل می کند تا نشان دهد که به هوش فرد یا شعن و مقامش احترام نمیگذارد و در زمینه این امور با این فرد و دیگرانی که او را قبول دارند، هم عقیده نیست. ب. چیزهای جاندار به همین قیاس درد شدیدی که ناشی از این احساس است که دیگران در سکوت سرگرم تمسخور شخصیت ما هستند. پس از ورود به هتلی در سوئد با کارمندی که پیشنهاد می چمدانم را حمل کند راهی اتاقم می شدم. او با لبخند میگوید برای آدمی مثل شما خیلی سنگین است در حالی که بر آدم تأکید می کند تا به طور بگوید من آدم نیستم. او موی بلند اسکاندیناویایی و سیمایی با اراده دارد. شاید اسکی باز یا شکارچی گوزن الک باشد. شاید هم در قرون قبل جنگجو. میگوید: "موسیو، از اتاق لذت خواهید برد." معلوم نیست چرا مرا موسیو مینامد، در حالی که میداند از لندن میایم نه پاریس. و استفاده از "خواهید" حاکی از دستور است. وقتی میفهمم که این اتاق پر از سر و صدای ماشین ها و دارای دوش خراب و تلویزیونی شکسته است، معلوم می شود که این حرف او کاملا بی مورد و نشانه توطعه بوده است. افراد ساکت خجالتی اگر احساس کنند به طور پنهانی مورد تمسخر قرار گرفتهاند ممکن است عصبانی شوند و ناگهان فریاد برآورند و بدرفتاری کنند. حتی ممکن است آدم بکشند. یک وقتی آسیب می بینیم، وسوسه می‌شویم که اعتقاد پیدا کنیم چیزی که به ما آسیب زده آمدان این کار را کرده است. وسوسه می از ای که بندهایش با واو به هم مرتبطند به ای برسیم که بندهایش با برای اینکه به یکدیگر مرتبطند. یعنی از این فکر که مداد از روی میز افتاد و من حالا عصبانی هستم به این عقیده برسیم که مداد از روی میز افتاد برای اینکه مرا عصبانی کند. دو سنکا مثالهایی از این احساس مورد آزار و اذیت اشیای بیجان قرار گرفتن جمعآوری کرد. در تواریخ هرودوت یکی از این ها دیده می شود. کوروش پادشاه ایران و بنیانگذار یک امپراتوری بزرگ اسب سفید زیبایی داشت که همواره در جنگ سوار آن می‌شد. در بهار سال 539 قبل از میلاد کروش به امید توسعه قلم را به خود به آشوری ها اعلان جنگ داد و با لشکری بزرگ به طرف پایتختانها، آنها بابل باقی در کرانه رود فرات حرکت کرد. پیش خوب بود تا اینکه به روده گندس رسیدند که از کوهای متیانی به دجل سراسیر میشد معروف بود که این رود حتی در تابستان هم خطرناک است. و در این هنگام از سال قهوه رنگ و کفالود و از آب بارانهای زمستانی متلاطم بود فرماندهان لشکر به او توصیه کردند درنگ کند ولی کوروش نترسید و دستور داد درنگ از گندس عبور کنند اما هنگامی که قایخ ها آماده شدند اسب کوروش بدون اینکه دیگران بفهمند سعی کرد با شنا از رود عبور کند جریان آب او را فرا گرفت و سرنگون کرد و به پایین رودخانه برد و غرق کرد کوروش خشمگین بود. رودخانه جرأت کرده بود اسب سفید مقدسش را غرق کند. اسب فرد جنگجویی که کرسوس را به خاک انداخته و یونانیان را ترسانیده بود. او فریاد زد و لعنت فرستاد و در اوج عصبانیتش تصمیم گرفت گستاخی گندس را تلافی کند. کوروش قسم یاد کرد که رود را چنان مجازات کند که آنقدر ضعیف شود که در آینده زنی هم بتواند بدون خیز شدن زانوهایش از آن عبور کند. کوروش نقشه توسعه امپراتوریش را کنار گذاشت. لشکر خود را به دو بخش تقسیم کرد. 180 آبرهای کوچک را مشخص کرد که از هر یک از دو طرف رودخانه به جهتهای گوناگونی می رفتند و به افرادش دستور داد حفاری را شروع کنند. آنها تمام تابستان به این کار مشغول بودند. روحیه خراب شده بود و تمامی امیدها برای شکست سریع آشوری ها باد رفت. وقتی کارشان تمام شد گندس که روزگاری سریع بود، به سی و آب جدا تقسیم شده بود و آب چنان به کندی در آنها جریان داشت که زنان محلی می توانستند بدون بالا بردن دامنهای خود از آن آب باریکه عبور کنند. خشم کروش کاهش یافت و به لشکر خستش دستور داد پیشروی به سوی بابل را از سر گیرند. سنکا مثالهای مشابهی از احساس مورد آزار و اذیت جانداران قرار گرفتن جمعآوری کرد. یکی از آنها مربوط به حاکم رومی سوریه، گنایوس پیسو بود که امیری شجاعوری آشفته و مضطرب بود. یک بار سربازی بدون دوستی که با هم به مرخصی رفته بودند بازگشت و ادعا کرد نمیداند دوستش کجا رفته. پیسو به این نتیجه رسید که سرباز دروغ میگوید و دوستش را کشته و باید خود نیز کشته شود. مرد محکوم قسم یاد کرد که هیچ کسی را نکشته و خواستار محلتی برای انجام دادن تحقیقات شد ولی پیسو بهتر می دانست و بیدرنگ سرباز را به مرگ محکوم کرد. با وجود این در حالی که سانتوریون معمور اعدام سرگرم آماده شدن برای قطع سر سرباز بود دوست گمشده به دروازه های اردوگاه رسید. لشگر ناخداگاه به هل, هل پرداخت و سانتوریون با آسودگی خاطر اعدام را لغو کرد. پیسو خبر را خوب درک نکرد. وقتی صدای هل, هل را شنید احساس کرد حکم او را مسخره می‌کنند. چنان چونان برف روخته و عصبانی و خشمگین شد که افرادش را احزار کرد و دستور داد هر دوی آنها را. سربازی که قتلی انجام نداده بود و سربازی که مقتول نشده بود اعدام کنند. و چون از این واقعه به شدت احساس آزردگی می کرد. علاوه بر آنها سانتوریون را هم به کام مرگ فرستاد. چهار. حاکم سوریه در یک لحظه هلهله سروازانش را به صورت میل به تزعیف اقتدار خود و زیر سال بردن حکمش تفسیر کرد. کروش در یک لحظه قتل غیر عمد اسبش به دست رودخانه را به صورت قتل عمد تفسیر کرد. سنکا برای این اشتباهات داوری تبعینی در اختیار داشت. این امر به عجز و فرومایگی روح مردانی مثل کروش و پیسو مربوط می شد. آنها منتظر توهین دیگران بودند و پشت این آمادگی این ترس نهفته بود که شاید سزاوار تمسخر هستند. وقتی زن می‌بریم که هدف مناسبی برای آسیب دیدن هستیم، چندان دشوار نیست که به این عقیده برسیم که کسی یا چیزی می‌خواهد به ما آسیب بزند. فلانی امروز به من اجازه ملاقات نداد، ولی به بقیه اجازه ملاقات داد. او با تکبر و سردی با من برخورد کرد یا صریحاً به حرفم خندی. او به من صدر مجلس را تعارف نکرد بلکه مرا دم در نشاند ممکن است این بقایع دلایل ساده ای داشته باشند او امروز به من اجازه ملاقات نداد زیرا میخواست مرا هفته بعد ببیند به نظر میرسید رسد که او به من می ولی این تیکه عصبی صورتش بود اما وقتی دچار اجز و فرومایگی روح باشیم اینها اولین تبیین هایی نیست که به فکر ما می رسد پس باید سعی کنیم احساسات ابتدایی خود را با توری بپوشانیم و بیدرنگ بر اساس دستورهای آنها عمل نکنیم. باید از خود بپرسیم، اگر کسی جواب ای را نداد، آیا قطعا میخواست ما را ناراحت کند؟ و آیا کلیدهای گم شده قطعا دزدیده شدهاند؟ حکیم، هیچ چیز را اشتباه تفسیر نمی کند. شش سنکا در نامه‌ای به لوسیلیوس به طور تلویحی توضیح داد که چرا حکم ها چنین چونین کنند. سنکا در یکی از آثار هکاتوی فیلسوف به عبارتی برخورد. میخواهم به تو بگویم که امروز از چه چیزی در آثار او خوشم آمد. این کلمات. میپرسی چه پیشرفتی کردم؟ شروع کردم که با خودم دوست باشم. این واقعا امتیازی بزرگ بود. می میتوانی مطمئن باشی که چنین فردی دوست تمام انسان است. هفت برای سنجش سطوح درونی نفرت ما از و دوستی ما با خود راه سادهی وجود دارد. باید ببینیم چگونه به سر و صدا واکنش نشان میدهیم. سنکا نزدیک ورزشگاهی زندگی میکرد. دیوارهای خانه او نازک و سر و صدا همیشگی بود. او این مشکل را به لوسیلیوس توضیح داد. تصور کن چه صداهای گوناگونی در گوشم میپیچد. برای مثال، وقتی نجیب زاده ای جدی با چرخاندن وزنهای سربی سرگرم ورزش است، وقتی او به شدت مشغول کار است یا تظاهر به آن می کند، می توانم صدای قرقر او را بشنوم. و هر وقت نفس محبوس خود را آزاد می کند، می توانم صدای نفس نفس دادن خس خس مانند تیز او را بشنوم. وقتی توجه هم به فرد کمتر فعالی جلب می شود که از مشتمال ارزان قیمت معمولی خوشحال است می توانم صدای زربات دستی را که شانه های او را مشتمال می دهد بشنوم به اینها باید دستگیری گاه و بیگاه ایاش یا جیبوری را اضافه کرد و نیز سر و صدای مردی را که همیشه دوست دارد صدای خود را در حمام بشنود آرایشگر با صدای گوش خراش بلندش بعد کیک فروش با فریادهای گوناگونش سوسیس و کالباس فروش شیرینی فروش و فروشنده گردی که جار میزند هشت آنهایی که با خودشان دوست نیستند، تصور این امر برایشان دشوار است که کیک فروش برای فروش کیک ها فریاد میزند معمار طبقه همکف هتلی در روم ممکن است تظاهر به تعمیر دیوار کند ولی نیت واقعیش ااسیت کردن کسی است که سعی می کند در اتاقی در طبقه بالاتر کتاب بخواند. تفسیر دشمنانه: معمار برای عصبانی کردن چککشکاری می کند. تفسیر دوستانه معمار در حال چککشکاری است و من عصبانی هستم. نه برای اینکه در خیابان های شلوغ خون سرد باشیم باید اطمینان داشته باشیم که آنهایی که سر و صدا می کنند هیچ چیزی درباره ما نمیدانند باید بین سر و صدای بیرونی و احساس درونی سزاوار مجازات بودن توری بکشیم. ما نباید وارد سناریوهایی بشویم که تفاسیر خوشبینانه ای از انگیزه های دیگران ندارند. از این پس سر و صدا هرگز خوشایند نخواهد بود. ولی لزومی نخواهد داشت که ما را کنند اشکالی ندارد که بیرون همه جا شلوک بازار باشد مشروط به اینکه در درون ما هیچ آشفتگی وجود نداشته باشد Thank you.